فیلم سفر خوش نویسندگان سید قاسم قوامی و ارژنگ امیر فضل بازیگران رضا شفیعی جم در نقش فرهاد ودودانجاره ارجن فضلی در نقش مسعود بندر. بندر بندر. نصر الله رادش در نقش پیروز الان وقتی که من با خودم تثبیت کنم تو خانواده شما و نادر سلیمانی در نقش اکبر آقا تن ها سر خانواده یا آقای سرخابات و بزرگ این خانواده منم اینو چیز خور آقای کارگردان افشین صادقی خانم موسینی جلوی در حیات ایستاده و دوتا مرد تو حیات مرد موسینی که اسمش لطفلی خان سخاوته را داخل یه فرش می پیشن می یه مرد که تا خورشی با تلفن حرف می و با عجل لباس کارش در می. یه مرد کترنبایی اینکی که اسمش فیروزه هم داخلی استانه تو ایستاده و لباسشو مانتر یبارشی کارو رانچامیدم. یه باره جوان با حالت جوان مردانه، پلاستیکی خریدهایی یه خلو میانسان رو داخل صندوق عقب ماشین میذاره. مونده و وجود داره. بله. هزار سال میشی. نه نه. وامو فیروز که کناری جه مرد مسن نشسته و یه جعبی جوراب هم تو داشت. میدن زرعتو تلف نکنی. میدن دیل. من هم بله بله بله صاحب این هرین درسته, درسته؟, درسته. درسته؟ اه اه اه اه اه اه این درسته این سیجور زورادان خدمت شما خیدما خدمت شما خدمت شما باشه مهم شهری من بشه این از لطفالی خان که تو حیات فرش پیچش کرده بودن و حال پشت وانت به جره بیمارستان و بردنش و روی برانکار به داخل بیمارستان میبرنش داخل یه رستوران و زن جوونی که حرفی رو با آشفاز رسطوران میزن و میری آشفازم نگرام یه خانم هم داخل کادو و فروشی بله به تلفن جواب نطفلی خان بستری شده و پرستار دستگاه منقبت ویژه رو به کنارش میاره داخل محبت بیمارستان مرد آشپز که اسمش پیروزه با اجله و تلو تلو خورم میخوره زمین و خانم داخل رستوران که اسمش تورانه رو میبینه نمیخو خاندادا رو ببینه چرا آقا؟ می‌تونی بری شال بپوشم؟ نمی‌خوام حرفای بی رفت بهت بزنم. مگه بزنه؟ بی ادبه که حرف بی رفت من بزنه. مگه من چیکارش دارم؟ من اومدم بابای تو رو ببینم. نمی‌دونم چرا اص تو خوشش نمیاد. تمیدجوری چشمش ریزه می‌ری. نکن. من دارم راه میرم. دارم میافتم زمین کجاش رو نشستم. میگم تو رام. تو رام من یه سوال دارم از تو. خب، میجام بپرسم؟ علی علی. اص خودتو خورد نکن. ببین اومدمو خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده خدای اون روزو نیل لال. خدا سلامم لو امیدم بابات فوت کرد خدا اینا کرده اون با ما چی میشه آقا کی روزی کاری میذاری تو بگیر خدا نکنه خب خدا نکنه خدا نکنه من که ستاد گفتم خدا نکرده اصلا ولش کن الان وقت این سال نبود تمام الان دلشوره دارین ناراحتی ان شاء که خدا بخواد ای خدای بزرگ حالش خوب بشه ای بزرگ سایش بالای سرمون باشه و ما یعنی منم دامادتون باشم. حالا برو تو خانده داشت نایمده تو رو ندیده برو برم بله برو الان من برم بله؟ حالت خوبه چی داری میگه تو چوران الان وقتیه که من با خودم رو کنم تو خانواده شما الان همه هستن اگه من نباشن میگن این چیزه این کم برده کوتاه اومده آب روز نمیشه من بالان شایستگی و لیاغت های بتونم ثابت کنم مثل یه شیر قرصم محکم بالای سر بابا بایستم هر چیزی نیاز داشت نیازه شو برطرف کنم و حاضرم شب تا صبح بالا سرش بمونم و هر کاری که بگه انجام بدم و جونم هم تا حدی تا شو با حاضرم برش بدم همه حالا باش من برم ببینم بالا چه خبره اگه خانده د خب من اینجا اگر میاد <تصفيق> <تصفيق> <میاه. تصفيق> <تصفيق> برای من خبر بیار من دلشوره دارم نمیذاره من تو صحنه که سن یه اون با استرس زیاد به سمت پیروز میاد آقا جون، کجا خراب چه شد. من مگه من وان شدم. حالا جون بد بشه. میگم مثلا همیشه شده کجا می‌جبردنش. کجا بردنش؟ تو تماشاش گوزیدی. کجا بردنش؟ نذاشتن. حالا منم درسه داداشش کردن. کلفت اینجا مونده. گفتم آره من پیغام تو من خبر بده بعد من کجا بردنش؟ آقا کجا بردنش؟ سیسیون نه آقا تو نه نه این خانوم هم می نه گفتم سیسیون من, من که گفتم سیسیون بابا چون هم بیا برای من یه خبر بیار من مورده و از دل شده هرکی میاد یه خانومی دیگه با عجله ی زیاد تو محبت بیمارستان میده و به پیروز میرسه سلام خانم. شده یه خود دل شده اصلا نیست راه کجا ماله نشده هیچ اتفاقی نیفتاده مطمئنم مطمئنم چون که من تورانو فرستادم برای من خبر بیار خودم که نمیتونم برم بخاطر زداداش سی سی که هوا داشت ما بودی سی سیو کجو بودی اون همین بخش دو تا اکسیژن بهش میدن ان حالش خوب میشه میاد مطمئنم حالش خوبه مطمئنم من اونجا نیستم مطمئنم مشون ولی اگه خبری شده بود خب جیغی میری چیزی توران میذار من میشمیدم چیزی شو نه میگم حالا که جیغ نزده حتما خبری نشده خدا روش درست برم خیلی با من. وقتی وقتی آقا, آقا آقا بهروز از ماشین پیاده میشه و به سمت پیروز میاد. اه اه پیروز. پیروز اونجا چیکار می‌کنه؟ سلام سلام سلام. چی شده؟ چه ب... خب، پر بگو دیگه اونجا چم شده. نه، بچی خودت دیدیش؟ نه. نکنه ب... یه موقع آقا جون، یه موقع بهش نه. مو... بچی چی؟ خودت دیدیش؟ نه. خودت دیدیش؟ نه. تموم یعنی؟ نه، خدا نکنه. موقعی جوری که تو لال شدی حتماً یه نه، نه. من جوری دلوقه... که خب بگو دیگه حتت کو منو بگو. تموم دیگه من اصلا آرامش ندارم. این تو فلوس فلوس بگو تو تو تو گیت تو خب تورا رفته اون تو خبر بیاره منم منتظرم که تو ولم دادی یه دفعه چه خبر بیاره دلایکی خوش خبر باشه خوشخبر خبر باشه بهروز بهش میزنه و به داخل بیمارستان می. چه شونه اینا ویروز یکیف سامسونت و یه جعبه جورا پر دستشو ترکه یه موتوری به بیمار سان بیرسه درست دردن کنه گربونت درست یه لحظه ببخشید من شهرمند تونم یعنی چی؟ من نمیفهمم طوری شده؟ نه نه نه نه نه. طوری نشده شما 15 تومانی خدمت نست؟ بله چند چکم ببخشید که شما چقدر میشه؟ ساعت بله، چون بنده متأسفانه فراموش کردم که کیف پولمو همراه خودم بیارم. آخه میدونی بنده حل شدم، پول بودم، تصیر نذاشم که شما نمی‌دونید تو در چه اتفاقاتی میفته. کاش میکنم که این یک جفت جوراب رو که قیمتش بیشتر از 2000 تومان می‌ارزه ازن قبول لطفتون میاد. می‌خوام چیکار، آقا کرایه‌تو بده. قربان من کاش شما با قبول این جوراب بنده از این بیشتر مدیون خودتون نفرمایید. لوطمان من قربون هرچی شدم با معرفت میام کوچکی شما را میکنم راحت میشم قربونت سلام سلام پیروز جان چطوری باشی خوبی ببینم برا ها ببینم برا چه واضی خواستگاری تو یک سال به عقب افتاد نه نه چرا عقب افتاد؟ ارهم نرفته ده چرا دیگه پسر خوب بیا واسه من چه بگم بیا جا. ببین ادم وقتی یکی از فامیل نزدیکش مثل حاج حسین صفاوات میره بعد نامزدی بگیره شو جوونم یار مگه حاج حسین صفاوات مرده؟ نه مرده. احتمالاً مرده. آه. چرا حالا حالا تو بیا تو بیا این جورابو بگیر. اگه بتونی مثل پسرای خوب اینم بگیر اینم بگیر. مثل پسرای خوب برید 10 جفت جوراب. مواظب که جوراب گوش کن اگه بتونید دهش جفت این جورابارو بفروشیم من پول یه دونهشو خرج خیریات و حموات حاج حسین صفاوات می‌کنم. فهمیدی؟ که برای یه سالمون کافی باشه برای هم من هم تو یعنی برای سواب ثواب ثواب بدیم آفرین بگی شما این کار شماست من بلدم برو بس پسر خوب اون گوشه بشین یا رو بفروش که اگه بتونی این کارو بکنی از دو ماه شده آقای استخامت آخر اوقاتمون خیلی بهتر میشه هم تو هم من خوب فهمیدی برو بشین اینجا بفروش من کار دارام دارم میام برو واسه اونجا خدا من خیلی پیروز سال سالت جوی جوراب رو به پیروز میده بهروز به نوشته سه جفت هزار و پانسد تومان بهروز با عجله از جمعه میز بخش و یه پرستار رد میشه و به اتاقهای بیمارستان نگاه میکنه بخشون. بخشون. بخشون. بخشون. بخشون. بخشون. بهروز به سمت بخشون. سیسیو میره که دخترای آقای سخاوت و مادرشون جلوی درش اصدادن بیره. اینجورید ای خدا منو بگو اگر کنو نکن اینجورید که بالا این منو شما که میدونید من با می می این به با جون صداقت می میرم ازا آخه میکنی هنوز که الحمدالله اتفاقی و راشنگی افتاده نفوس بد میزنید شو جی می ایه میتر بی درمانت من میذونم چهایی آره روز آقا, آقا جونم که هنواریش نشده که رو گندن. رو گندن؟ بله. بودو بودو تو رو ما رو تو رو ما رو گوندن بله ویروسم بود و بودو به داخل بچکانو بچکانو ماده آقا استحابت کجا هستن ب... این تو اینو سمتش کرد دردم من گفتم خدا بخدا شو خودت راयत کن شو خودت اصلا زاتن خونه که آرومی اصلا متشکرم ممنون خدا آخین چرا آخوچی نمی‌ندازم کرفسی؟ یه کی به من می‌گی چه مرا ایثار و آخوچی نم مرا ایمان می‌ده؟ آخوچی نم کودا؟ آخوچی اینجورت میکرد اقام خیلیم بازی نکن یه میتونم خانم یه میتونم خدا راست میگه آخه فیلوز این قدیه جریه داری نکن یا این دقماره به دیل اشکر می کن از شوارم نکنه بهروز کن دیمی چجایی یه دیمشونه دیمی دیمی خیلی از بهروزو بغیر میکنه خانم ها بعد از تو اوه بابا باید یه مرزم آب رومندو در خور شخصیتش براش بگیم چه تونو آقا فیروز آقا من که هزار ماشدونه هزار بار شدید چیشون نجا در روز سرومورو گندن رو گندن؟ بله نه دو تا پا یه تاکسی پیاده کش آقا سمت بیمارستان میان میشتنی مسیرشون رو عوض میدن که جلو میان، به کیف سامسونگی جهبه یه شراب ها که پیروز یه جدول کنارشون نشسته و یه جورابم تو دستشه این پاها متعلق به کسی نیست جز اکبر آقای لوتی مسلک داداش توران خالم و پسر لطفالی خان که با تعجب زیاد به پیروز خیره شد و پیروز هم اصلا تو باغ نیست حالا از در سیبیم. خانم به من فریاد میکنه خودیادرسته. خانم خانم این مادر. نه دختر لطفالیخان یه هوش میکنه. خانم جان. خانم باش چند مراسم میره خیلی قشنگه چینی که تو ده ده فیروزو به کوچه یکش فکر به بکنیم درست نیست گفته کرده بریم سفارش به این رویی میماستون بکنیم مراسم بریم بهروز و فیروز به چاپخونه اومدن مرحوم مفقود شادروان لطفلی خان زن لطفلی خان سخاوت از لطفلی خان سخاوت در ساعت این اینجا شو این ساعت و نقطه چند تا نقطه خالی بذاریم ساعت و تاریخشون بله. ساعت و تاریخشون با خودمون برایم با خودکار پر میکنیم شونه یرا نباشیم اکبر آقا با اختتار قدم بر میداره و از کنار پرستار رد میشه تا به جلوی در سی سی و در سی سی او رو؟ نه نه نه نه فقط نگاه الان خلابا در آمد والا شطورم چی بگم بینی که باشه با هر چی تو بگی ما مشخص شد چیکار کنیم به فیروز حالا اومدن که سنگ قبرم انتخاب کنن پس. پس شد پس فردا بله ساعت سه بعد از ظهر الاب 5 عالی مجلس ترحیم مرحوم اسم مرحوم مرحوم رضفور شادبان گلداشیان جنت, جنت مکان ماله. رزوان جایگاه جایگاه دار زند بله و حالا دوتایی اومدن سراغ قبل کرد بارخ وفات ب... یه ساعت دیگه شایدم دو ساعت دیگه خب شایدم فردا بعد آقا خوندوداش هنوز نمیدونیم خوندادا بله. ما که نمیدینم اون تو چه خبره یعنی هیچ کسی اینجا خبر نداره این چه خبره خلی سوال میکنیم کسی جواب به همون نمیده این برستان اونا رو که سفرش آقا جون رو بله. خونداداش اومده رفته هم همدانشگاهش که اینجا تازه باش که کار مخانه سفارش آقا رو بکنه بله دیدمش وقتی داشت سفایش آجاقا ما یه خواهش داشتیم تو بگو ببین آجاقا ما یه خواهشی ازادتون داریم میدونی چیه چه خواهشی؟ راست رو بخواین ما چون که منتظر مرگ متوفاستیم برای همینم اگر شما قبول کنین قرونتون برم ما الان یه مقدار از پولو بدین انشالله انشالله وقتی که ما... مورشالله میان کل پولو جیرینگی تقدیم میکنی نه نه بره. آقای معترم شما اهل معامله نیستین اگه نری میگم اینجا زنده به گرد میکنن ای آقا آقا شما چرا این جیرین میکنیم یه لن اکبر آقا کلافه تو راه های بیمارستان قدم میزنه تا به جلوی نیست بخش و خانوادش میزنه 400 هزار تومان پول خواهم میخوام. آخ، بده دوست من، خواننده شبات بدین دیگه اینجوری. از کجا بیارم که باید بدیم یه جوری دیگه؟ آخه خانداش جون آقا جون در خطرش چیکار کنیم؟ باید یه جوری کنیم کنی. وقتی که تازه من کل 4 تا دوست من یه جا بدیم، همه بیمارستان همینطور پول رو پیش بگم باید یه کاری بکنی. بابا جان من، همه باید با هم کمک کنیم تا این پول یه جوری فراهمش کنیم. به یوسفم، ز هم بالاخره به بین وارسال میرسه. اکبرم، کی اومد بخورونه برام؟ اکبرم! اکبرم! آیا خدا؟ آیا کردند به روزت برمی‌ریم، به روزت برمی‌ریم، آبازیم سخامت نمی‌ریم. آیا کردند؟ آیا کردند؟ میدونی چی ما رفته بودن بیش رئیس بیمارستان ما آبنش؟ حالا کلی هم از خاطرات گذشته تعریف کرد. حالا بله یهو این رئیس بیمارستان دکتر عالی می‌سوزد که گفتش که یک کاری بکنید که این بیمارستان به روزنامه خدا. بی‌جان فرقا یک کاری بکنید که این بیمارستان در خیلی تعداد خانواده‌ای سخامت. حالا بله اتفاقاً تو بال اندوالتلم کرد، شما اشمونش ببینید ایشو بناچ برجا بود چیکیره دیر شده اکبر جون دکتر گفت من تمام تلاشمو میکنم هیچیام کم نمیذارم چی گفت دکترش گفت خب بله دیگه خب خداشو خداشو اصلا حالاش برای من بهروز من تمام تلاشو کردم اونو که این بیمارستان در خدمت خانواده خودمون باشه دیگه بله بله بهروز دستاشو گوشه اکبر آقا میذاره و ماله که اکبر آقا چپ چپ نگاهش میکنه و بهروز هم دستاشو میندازه پایین آقای دکتر خانم پرستهار از اتاق بخش بیرون میده خانم اینجا چه خبره؟ خانم ها آقای مستاکت لطفن اینجا سالن نمایشه؟ سال. میدون ترباره؟ سال. بازار روزه؟ سال نونباییه؟ خانم آقایی مستاکت چی میخواه؟ سال اینجا بیمارستانه اینجا بیمارستان اون بغلو میبینید؟ اون اتاق سی سیوه. تو سی سی یه سری خوابیده. که با من فقط یک قدم فاصله دارم. از برای چی شلوغ میکنی؟ میخوام بکشی؟ سلام سرای دکتر. کارتونی نه. خرم اینجا تلوت سکوت نداره. آقای دکتر بارها به این خانواده تذکر دادم که سکوت را یاد کنه. موتارف اصلا نه همیت نمیداد. سر مطمئنم آقای دکتر ما کردم خانواده آقای سخاوت هست. سخاوت کی آقای محترم؟ از سر جاتون. همچی میگی که به سخالی رئیس بیمارستانه. به هم سرجاتو بهروز وقتی که نگوسین آقا با آشنا بل بله الان کارو میدم قربون برای دکتر شما چه بهروز دستشو روشونه های دکتر میذاره دست هزالتونو لطفا به من نذار دستتو من اصلا این آقا رو من فقط با رئیس بیمارستان آشنام میرو حاجا ما خوب ایشون میگوم هستیم بل بله بله میگم که آید دکتر ما از خانواده آقای استخبارات هستیم و پیش رئیس بیمارستان بودیم و ایشون خیلی از شما تعریف کردن گفتن که بیمارستان در بس در خدمت شماست تاثیر شماست خیلی از حسن اخلاق حسن رفتار کار شما همیشه تعریف فرمودن قربان آقای محترم رئیس بیمارستان برای یک کنگره پزشکی چند وقت رفتن لرستان و اینجا نیستن همه تا نه، میدونم سر که من اصلا خواهش فقط یک نفر با من همه و اکبر آقا ماتو ایستاده و به اونها نگاه میکنه. من اینجا شکاره. اکبر آقا راه نیافت. جدول ژنومی رو بقیه خانواده به دنبالشون هی به همدیگه اشاره میکنن به اوتا آقای دکتر همه روی صندلی میشینن آقای دکتر شما هم به با بیمار چه نسبتی داری؟ <تصفيق> آقای وارد میشه همها پسر خانواده ی آقای سخاوت و بزرگ این خانواده منم اینو چیز خور آقای سخاوت ایبا این حرف ها چی نمیزنی مادر ما که یه عمر یه خوریم نه جیر خور مادر شما نمیگم ولی بعض رو نمیگم قربان ما خواهد سپاری مقربان خواهدش میکنم بقیه تصیب ببریم بیرون لفتا بفرم نه نه مادر اکبر آقا خانمه ها رو به بیرون اتاق هدایست میکنه فیروز نشسته و به هم پشت اکبر آقا میره و وقتی اکبر آقا کمی از در میره بیرون میخواد که در رو ببنده که اکبر آقا جلوش رو میگیم اکبر آقا بیا اینجا میری به رئیس بیمارستان و سفارش منو میکنه یاده نره و حتما بفر... اکبر آقا با لگد بهروزو میکنه میرم میکنم تمنا میکنم استدعا میکنم بفرمایید بیرون آید من باید به شما اثبات کنم که آقای رئیس کیمارستان استرالیای تشریف ندارن ببخشید اکبر آقا من در خدمتتون میدونی اصلا استرالیای تشریف اکبر آقا شما مطلقا اکبر آقا دوش و فیروزو میگیره تا جلوی در میاره اونو هم با لگد پرت میکنه بیرون و در میبنده فقط یک نکته رو من خدمتون از کنم سلامتیشون در گروه آسایش و آرامشه آقای سخابت احتیاج به یک محیط آروم دارن خانوهای خانواده جلعه در دفتر دفتر اصداده که خانداش بیرون ید و فیروز و بیروز هم از پشت دیوان نگاه بکنه یک چی هر شده؟ نسبح میشه یک چی هر با خوب میشه میره میره, میره, میره بفرمایید. بهروز و خانواده آقای سخاوت میرن و بهروز و فیروز بودو بودو از پشت دیوار بیرون میان و به سمت دفتر دکتر میرن. ببخشید اقای دکتر ما مزاهمتون شدیم می خواستم بپرسیم که چه چیزایی برای ایشون زرر داره ولی یعنی چه چیزایی نباید برای ایشون تجبیز کرد سر و صدا، آردگی صوتی، هوای ناسالم، استرسای عصبی فشارهای روی و فکری، چربی و بقیه چیزایی که اینجا نوشتن براتون زمنان بهش دروغم نگید متکرم خیلی من شب شده و اکبر آقا و خانواده کنار آب نمای حوض خونه نشستن مخم داره میترکه مادر آدم این همه پول داشته باشه بعد واسه خرج بیمارستان از آداری رابع داشته ببین وقتی میگم دارم از دست بابای تو دقمرگ میشم اون وقت میگی این حرفا چیه میزنی مادر نگران نباش مادر منو داداش دورش میکنی؟ چی میگی رام؟ چی میگی واسه خودت از کجا جور میکنیم ها؟ خانده داشت بهروز و فیروزم کمک میکنن دیگه سهزار تومن اونا جور میکنن بقیه شما شم میذاریم حل دیگه ابداً حرف اون دوتاره اصلاً نزن یا من حاضرم گردنم بذارم زیر تبر یک قرون دست نکنن تو جیبشون بدن چرا مادرشون؟ چطور برادن هر پشم به جمعه بیان اینجا شام بلن بونن حاضر نیستن دست تو جیبشون کنن؟ خاطر من. به خاطر شما به خاطر پدرزنشون درست میگی خان خانداداش ما تا حالا ندیدیم این دوتا یه نون بگیرن تو دستشون بیارن تو این خونه ولی حالا گفتنش که ضرر نداره من که راضی نیستم اتفاقا من راضیم از دهی دلم راضیم باید دست کنن تو جیبشون خرج پدر با هم بدیم اونا پول بده نیستن نیستن؟ از خلقونشون نکشن بیرون حالا ببین من واقعا نمیتونم بهروز و مینا داخل خوننشون. خب تو شب میرم زعمت میکشام اطلاعات پزشکی در اختیار مردم میذارم. اون وقت من باید پول بیمارستان چه راواقت سرخاتو بپردازم. بله، باید بدیم. بهروز قرار شده پول بیمارستان آقا همه خانواده بدن. ببین. دیگه به من نگی باید چون اگر بگی باید منم میگم باید اون داداش گردن کلفت پول بیمارستانو بده. این داداش بیچاره چیکار دادی؟ اون طبلگی که تکشو داده. نتونه پول تهیه کردن بیام زن خوبه خوبه نمیخواد که خودم به اددام به من پاس بدی بخو این درست بناره بیچاره برام سفت باشم جون بکنم بعد بیام از این بیمارستان پدرزن فول دارم و تقیه بکنم این درسته باید تقیه کنی لا سلامتی بابامه اگه کمکش نکنی میدونی آیندامو چی میشه خودت هر چی میگیشم از دست اون شوهر خاله جیراف نوشم میگیشم کیلویی فرزیدت خودت چه بونم ازون آخه بابا چقد گفتم گفتم گوله شو نخوری یا چشمو می نکنی آخه تو موبایل میخاستی چکار کنی رفتی موبایل خیستی خریدی؟ من برد بخ باید صبح برم سر کار قسط موبایل حضرت حالی رو بدن صد دفعه به اسم موبایل منو نیام او چیکار به موبایل من داری؟ از قدیم گفتن فرفه نبین چه ریزه بخور ببین چه تیزه بشکم ببین چه تیزه شاده حالا بله خانم بله بله من کاملا حرفای شما رو و حالا فیروز خانم بلژان عزیز بنده هستن مطمئن باشی که من اگر ایشون رو بیشتر از شما دوست داشته باشم کمتر از شما دوست ندارم بابا من حاضرم برای ایشون به جون عزیز خودش هستم جونمو بدم شارایم هم بذارم پاش پول چیه من اصلا کار بی ارزش نمی‌کنم و نکردم تا لا برای کسی ببین فیروز من گفتم خرجی نداریم برای ادامه‌ی زندگیمون سر کار رفتم سر کار خب من باید گفتم بعد نگفتی ولی قرار نیستش که نسل شب بری سر کیف پول من و حقوق یکمامو کشفری و خج قروفرد بکنی قروفر؟ بله قروفر؟ بابا خانوم عزیز من بدبختی میچله صبح تا شب میرم جون میکنم که مثلا همه مردم یه اونم حلال در بیار فقط سن جون چهار تا نامرد دره نباشه اون واسه شما نمیگه قرفرف به خاطر همینه که همتون آرزوی میاق جونمو دارید اخ جونت که همین شبه که ما که داره آقا جونت مایه شرف عملی جراحی میکنه اون وقت چه میدونم معده و روده و عرق و عروق و هم شم... با عروق حالم عروق که پشتبندش هم هی جون تو پی در پیچ سخته میسره حتما نیم درم تیینها خواهیم از پولش. طوران پیروزم داخل کوچه قدم میزنم. چی میخوای بیام بگه؟ نه. تو مطمئنی حرفی نمیخواستی به من بزنی؟ گفتم که چیزی نمیخوام بگم. نه نه نه گفتم چیزی گفتی گفتم احساسم. نه هرکی ندارم بری لطفالی خان چشماش رو روی تخت بیمارستان باز میکنه. روز شده و توران توی محبتی بیمارستان نشسته و منتظره که یه یه دست و چرد و چک مسافرتی میاد جلی صورتش بفترم پیوز دینم چه آسده من چک مسافرتی برای توران هست از کجا بردی؟ خب معلوم از حسه رئیس حسه لازه سابداری کلی برشت هم از کشیدم تا پیدا کردم قسطش هم خود هم میدم چون آش. قسطش رو با هم میدیم تو رو حسابداری تا دیر نشده با دوباره تو رو به سمت بیمارستان میره و در حین رفتن بر میگرد و پیروز نگاه میگرد پیروز تو با هم این از دیرید تو را می آه... یه دست یهقه پیروزو میگیره. گیره. اکبر آقاست. امره. سلام آقا. سلام و, سلام و مار. دفعه اول به زبون خوش بهدون. آقا درد میگیره. جانم که درد میگیره دفعه دوم... یک شب با عصبانیت بهت میگم بیشتر در کرد بیشتر, بیشتر درد گرفت دفعه سوم عین موش میگیرم دو تا از دمپره خودم و خواهرم پرت میکنم تو تو اصارو که میکنه تو خیابون مگه نمیونش شدی اگه من چه این شدی به تو علیو فروختم ببین چی دارم بهت میگم فقط یک بار دیگه یک بار دیگه ببینمت با همین دستام خفنت میکنم اه. سلام ب... کجا؟ آفرات محبت بیمارستان توران رو می‌بینه. غلام هست. این از کجا آوردی؟ بوم گرفتم. بوم گرفتی؟ مم. ببین، وقتی میگم تو دختر لایقی هستی، حرفای منو گوش نمی‌دی. اون لیاقت تو رو نداره توران. به خاطر همین میگم به حرفای من خوب گوش بده، خوب فکر کنه بیاد دنبال من. واکن آخرین هوتو معکوم سپوت به شما ها لطفا ف این تختش نیستسته و خانواده دور ب یه پاپاسی بابت هزینه بیمارستان پرداخت نمیکنم <تصفيق> حتی باید زیان و ذره این دو روز تعطیل هجررم شماها پرداخت کنی و الا انقدر سکته میکنم کنم میکنم می میکنم،, میکنم که پدرت من در بیام <تصفيق> اکبر آقا و هم خوشحال میرسند آقا جون آقا جون مشده آج بدونم چهارستر زارف من پول بیمارستان جور شد خب خوب شد ها فردا هم ترخیصیم برید گام فردا ترخیصیم مگه من کالای گمرکی هم که فردا ترخیص میشم اونجا مریض؟ گفتی مریض مرقص میشم من مریضم شما ها مریضیم بد مختای بیچاره ها خواهدین حرفا چیه میزنی عوض دست درد نکنی داری به بچهات میگی اینا بچه اینا خرچه دست درد نکنه بابا شو تو هم رئیسشونی برم نیخ مندم آدم ولی چهارصد زارت صد زارت من، پنج تا چهارمی شد، بیش بعد سال دو بذم دو سال من چهارمی شد دو روز، دو روز این همه پول چهارصد زارت من دوباره بیمار شد، میکنم دم، من میکنم چیکار کنم؟ با دستگل به شیرینی و میوه به محبته بیمارستان محبته بیمارستانیات که بهروس و فیروز میبینند چه گونه خیلی با این کارچو <تصال> <تصال> کاراچ... شیرینی کردیم. با این کارچو با این کارچو با این با این کارچو با این کارچو با این کارچو با این با این کارچو این با بهروز فیروز با شیرینی و گل و میوه میرن و پیروز بیچاره رو تنها میذارن. زن دو سه روز هجره بسته اتاق لطفعلی خان داخل بیمارستان. کسی جواب میده بابا. بهروز و فیروزم میام. با چه سعادتی آه. چه معجزه ای پدرزن عدید من در نهایت سفت و سلامت اومدن داخل بخش مریم آه. این یعنی امید بلی خوندان سخابت علیکسلام خلاب آقاچون آقاچون شرمندی کردی ماروش شما از این کارا نمی کردی اختیار داری مادر جون اختیار داری گلوشیرینی که قابل شما رو نداره که ما بازریم زمیدگیمونو بدیم آقا جون سخابتو تو سیسیو نبینیم اونجایی که دلمون میخواد ببینیم با عبرو به آسمون اشاره میکنه <تصحيح> عمرت همه گل عمرت همه گل نسیمت از گل سرخ جانان منی جانان من این نباشد و من چون ای خول مزیفت خواست پانه ما نظر کردیم فاره. اگه اونجایی که دلمون میخواد شما رو دیدیم آه. بدیم یه دعویست راسته براتون بیارن در خونه من یه منیس دیگه هم پوتاق چشما شده هلیش و گوشش بانداش شده است آه. آه. محرس میشن اروپایی مریض هر وقت می فرمودیم متوجه بشید ای بابا حالا بابا نفس هم دیگه بالا نمیاد ای بابا بری یه خود باد میاد یه خود کامه باد دست باد میزنه چه میده خلاص تایکی بگیم براش میاد در اتاق باز میشه و پیروز پشت در نشسته و گوش ایستاده و یه گل گلم تو دستش میگه محکمان آنباله یه سرشی سلام سلام برقشی بابا خوب من گل گل بودم برای شون تو گل آره حالش بد نیست میتونی بیا از نزدیک ملاقات کنیم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 Oh, تو دنبالش که پیروز جون از دستش میفته تور با رو از روی زمین برد مادرش لب حوز حیات مشغول زفری شدن یه ایوان. هندونه یه ها پرس میشه داخله هست سلام پیروز تو بالا دیوار چه کار میکنی؟ ترسیدی؟ بیا تو مادر چه سر دیوار باید دید نه, نه نه من داخل نمیام مرسی همیجا خوبه من از اون تسری گردن کلفتتون میترسم ببخشید حالا بیا فاین یه چیزی بخور بیا این هندونه رو گرفتم آوردم انداختم توز منکشه که آقا سقابت از دنهاستان تشک میانند بخورن جیگرشون اینشالله منکشه میکشن درست درد نکنه خدا اون رسیده مادم ببینم اکبر جان قربون تو برام پسر نازنینم و حالا حجبه عتیق فروشی لطفلی خان که با پسرش اونجاست همم که هفته سالمه توی حجرم ست ساله دیگه هم که باشه باز تو این حضرم به کوریه چشم اونایی که نمیتونن ما رو ببینن چشم اونایی که شما رو نمیتونن ببینن خورشه ولی بابا شما ما ماشالله ماشالله توی سن و سال خیال جوون؟ معلومه معلوم میشه تو هنوز پدر خانواده خودتو نشناخت چرا خوب شناخت بله. ما یه خانواده کاملا استثنائیم بله شما استثنائی هم استثنائیم ببین بابای خدا بیا مرز من هر 15 روز به 15 روز یه دفعه سکته میکرم. من خودم از خجالت که ماهی یه دفعه سکته میکنن. خواهرام هم یه روز در میان سکته میکردن. اما هیچ اتفاقی نیفتاد واسه اینکه ما خانواده استثنایی هستیم بابا اصلا من کاری به این موضوع ندارم آب یخ رو زمین دیگه نمی‌شه جمعش کرد من دیگه نمی‌گی 70 سال تو این وحرط خب یه دفعه هم که شده بعضی ما گوش بده دیگه بابا شو یه هفته بابا فقط جون خودم فقط یه هفته بریم یه مسافرت خوب یه آب و یه جایی که خوب باشه یه ییلاقی اگه نه چیزی که هر داره هرچی به من بزن آ باشه کیفش میگی چ کردن پسر جون کیف نداره پول آوردن کیف داره کیش به روز فیروز تو بوده سخاوت داره تو تهران دود میخوره دود میکشه حس میخوره پول میخوره بدترین جای بدنش هم با جرایی شده داره روز به روز به عمرش اضافه میشه وقتی اون دیگه ما ببریمش کیش میام تو منظر ثبتی برات امضا میکنم که با یه سرمایه گذاری کوچول وجود اون نقشه حساب شده من برای سفر به کیش. برای همیشه تمام تمام فقط با بساری کسری خودشو شل کنیم همینو بس قبول قبول به هم دست میده. بانو، بانو، بانو، بانو یه شوفوری تو سیبیلو که اسمش فرهادویه، روی ورودی در جلوی اتوبوس ایستاده و اتوبوس قرمز رنگی در ترمینال در حال حرکت. دیوونه بندر، بندر یه شوفر لاغر سیبیلو هم که اسمش مسعوده روی برودی در اقامه بلاننده هم که اینک دودی زده اسمش آقا جمال بلاننده هم که دودی زده اگه چی میشه بری بندر بطار بندر با من با من بیان با کسی مسعود داخل ترمینال چندی مسافر جیل کرد بله مسافرها خانواده آقای استخابت یک ساعت داریم ما رو میبری این ور میبری اون بله اتوبوس اوتوبست نه؟ من اوتوبست بخبه بخبه ببینید ببین کله رو همه چی داره آقا جمال آقا جمال من خب باشن مجکیان. <تصفيق> تو و تو دست و پور مسافر. با سلام خدمت مسافرین مفرد و بشنوین سخنرانی آقا فرهاد شما مفرد شما مسافرین عزیز مقدم شما رو گرامی میدنیم و آرزوی سفر خود رو برای شما آرزو میکنم از که دوست که عزیزم و همکارم سرمهمانده آقا محسید رو یه زیرای معرفی کنم مخواست همون، مخواست همون و کوچیکانه مسافرایت. ازما قاوره نگه می‌داره و آقا جمال نکاتی رو به مسافرها گوش زد می‌کنه. راه راندن دست آورد می‌کنه. اینجانب جمال معروف به جمال خوشتاد با بیش از 70 سال سابقه در امر رانندگی تو چهار جای اروپایی قاوره تور خبر می‌آنه و اینجور جور چیزا با تجربه این 70 سال در خدمتیم. دوستان اگر چنانچه یه وقت در امر اتوبوس فشکلی پیش اومد ما اینجا راه های خروجی داریم که همینطور که الان من میگم توضیح میدم همکارم به شما چیز میکنه نشون بده که چجوری این حرف های من فرهادم با حالت مهمان در سرهای هفوپیما حوو... به انتهای اتوبوس اشاره میکنه جلالی بله دقی در قسمت شده که یه درشبار خودمه اینل کاشته میتونه بکنید. یه در در قسمبت عقب اتوبوس اونلا کا حالا بازده شده خوشمناه لاظ مسافرم خندشون گرفته با هم میشه. پنجره دور اتوبوس چیز شده تعبیه شده که در صورتی که به اکسیژن اتوبوس اشکال پیش اومد شما میتونید از این پنجرها به نفع شایستهی مختصی به بیاری بیارید. در پایان زیاده ارزی نیست. سفرت خوشی رو با سرازو می کنم. شرکتیت حفظ کنید. فرهاد اکبر غا چند بار با همچش بیچش می شن و خطو نشون سلام، شوکران. اسمش نادر. بفرمایید. مسعود داره از مسافرها پول میگیره. یعنی از موبایل چه خبر؟ موبایل؟ آره. یعنی میتونم واسه چیک کنم، من تا خرج داره. ببین نادر، اگه موبایل رو من ندی میمیرم. میمیرم. نه میلو چلاشقت. نلاشه من 385000 پایین وقت مرا نگیر الکی. یا کی دست صحبت نکونام دداداش من گوش بده رو کی ساکت کن دداداش ببین ببین من ما این پولا نمیدیم نمیدین نه آبرو فرما پایین دداداش پایین ما اینم نمیدیم پولم فیروز با هم درگیر میشن و فیروز میافته روی لطفعلی خان به شما میگه اکبر آقا میاد و خودشو میندازه روی مسعود. مسافری که موبایل میخواستن به زیر صندلی رفته و با موبایلش حرف میزنه. مسعود کمک میخواد و اکبر آقا مشت که روونش میکنه. لوت خانم خان هم وسط های پولهای مسعود از دستش میگیره و میشماره. حالا فرهادم چوب کشید و اومده وسط دعوا و حسابی بزن بزن شده آقا جمال اتوبوس نگرد آه... آقا اه آقا تداشت تداشت چی قدر می کنی؟ دستی چوب کشیدی من گرفتمش بیتونی بگیرش چه آقا جمال میاد به سمت فرهاد و بهروز فیروز دست به تا دوست من تا حالا ما تو این اتوبوس این حرفو نشنیدی آقا ما با اتوبوس سوار شدیم به آقا جمال من معذرت می‌خوام صحبت کو فرماد کن ده خلا شما برای چی من کیم من یکی من که واقعا مثل دانشگاه نمونه من یه آشه بیا, بیا. منم میگم آره. ما, ما شما رو قبول داریم. منم به این نمی‌دیم. ما می‌شما را قبول داریم. من کشی می‌کشی. من, من از شما. دست من کشی من دست من. دست من. من دست من. من دست من. من دست من. من دست من. من دست من. من دست من. من دست من. من دست من. دست دست یا هشت پنج است. حق ماست. درسته راست نیست. میگه حق حق ماست. این حقیت میگه. کدک دستون داره. این کدک دستون داره. منظورم اینه که من این کدک دستون داره. این کدک این <سطح> این خدمت شما ما نمیخواد این تخفیف ویژه به به خاطر مرامه به خاطر این همه کلاسی که جناب علی این که روایت میکنید اتوبوس ما رو مخرب هستید من صد تا اندازه رفیق برات برات برات برو این عکسی که گذاشین جرئت نگاه کن <سطح> دیگه چه باشه مگر تاریخ کارت تو. ای راننده، یه کمی صبر یه مسافر پایینه. یه بنده مرد مسافر به سرعت به سمت اتوبوس میاد و بالبال میزنه. اتوبوس دوباره راه میاد ببین یوسف. من دیگه در حالم از این اتوبوس نه آدمش به هم میخوره. میگم تو هم بیکار بودی، منو ورزشی آوردی؟ مردم زنانشونو مهازل میبرن اروپا با هواپیما هم دلت خوشه منو دلی میبری کیش اونم با این اوضاع. خوب آقا جون، اولی خوبه کتاب، توی، خوب علی هم دو، جای توی تو دارد نمیکنه. ببینم، مشعل، مشعل، نگیرو ام که سر جاس. وصف پین موتلامدیز، از دادن سلام، های به شما سلام میکنیم چون چی شما دوست داریم. در حال حاضر ما یک کنون استفاده خاصی داریم که توسط میموند در آقا محسول عزیز به شما توضیح میشه این نون خیلی خاصه این نون رو حتماً تی باید خالی خالی بخوریم با آب و نوشابه اصلاً میل نکنیم چرا؟ چون دارای ویتامین تی ایه دارای ویتامین ایه و برای بدن خودتون میدونید بسیار مناسبه با چون چی سوما رو دوست داریم و سلامت شما رو میخوایم یا تیرایی؟ نونای های پار ویتامینه به که همیشه سرحال و لفت قرمز و حالاتی میزون باشی دیگه آمدشون داداش خوشتیم سیامو نکن دیگه بسته تمومش کن چی داداش؟ چی میگی؟ سیامون چیه؟ دوباره اتوبوس نیست و پیر مرد مسافر از نیست دادن کلی زغ میگه خیلی بین مسافران نیم توزی میکنه بیده بیده. مرده. مرده. مرده. دو دو اگه سان، سانش، آقا جمال آقا جمال یک داری شان شان, شان, شان شان داری داری ای بابا رو این همون این همه خشخاش و کنجله ها خب مامان شما تقوا داشتن بفرمایید بفرمایید بفرمایید بفرمایید سلام علیکم بابا واسه سنیه نمو جریه تورام میگیره که برا ما شاکی میشه بابا کره پنیر چیزی لازم نیست چیزی اصلا من چیزی لازم نیست ها جانم دبین دراش ها اینا میبره واسه به روز چه مسعود رو میگیره من قربون دوستت دو خودت میخاری یا ذره بره واسو بیاره با دست ثابت نكون بعد میری از اون قزایی که خودت آقا جمال میخاری این قرارو زدن بر منو من با, با, با چه نق مخارمش میاره با دست ثابت نكون با دست ثابت شما بشین شما بشین داش من گوش کن راست هم به جمع اضافه میشون یقه مسعود رو میگیره اونو به انتهای اتوبوس اکبر آقا میبره به اکبر آقا می‌دونی با مسعود رو به باد کتک می‌گیره. ببینم ماشاالله به اینبوسه کنار لطفی خانم قلبم خوبه خیلی عالیه. فقط میدونی چیه؟ یه بستنی سنتی اکبرمشدی خالی که حال کنیم دستا تا بستا آدامس هم باشه که موجویین دهنمون از این خوشبی و حالت میادیم شهرش مابا جون میگنم بس بستنی هم بیارن آدامس هم بیارن برگونتون برمیداریم شما جون بخوا با جون, جون بخوا برمزن. در حال حاضر فرها چند مباری ویدوی تی دستیشه و پر از حادثه و خاطر انگیزه زایتانیک یعنی زایتانیک هندی به زبان پاکستانی و زیدویس فارسی تقدیم حضور میشه. حتما ها نرویش آزم جاپانیه آزم جاپانیه چه خبرتون آقای اون ماشین رو سرتون گذاشتی زن بچه مردم تو ماشین نشسته ای آقا بباید جوون هم بزار دارش رو شاد باشه دیگه البته این لحظات خوش و فقط تو آتوبوس جمال خوشتت نا آره ای گفته باشی باید شرمندی من فقط یه نکتی دیگه بیگم و برم این فیلم تخش صداش سیری و پولیشه ایستمنکاله فکر میکنم و تخش دیجیتاله. خب فیلمتو بذار دیگه تو ساعت داری برای یه فیلم توضیح میدی برمونه شکل ماهید برم بسیار کار پوزش از تمام مسافرین ارزی تو من خاملاً نمیتونم همه از ارمانو بزنم آقا یک کلمه من بگم که مدت این فیلس شیش داعته یعنی از اینجا تا کجا تی یعنی از اصفهان تا شیراز از اصفهان تا کجا شیراز از اصفهان تا شیراز کچیکم ها کچیکم آبا این ها عجب آدم آیه هم آبا آقای که که رو بکشیم با این تحتیق آقای ملترم پشتر مرد نزد آقای ملترم باید نیستم یه سوی نیگم آقا بکنه کنم موسیقی درم اکبر آقا بازم با هم چشم په چشم میشنن تاخمه مسعود توسینی تاخمت آروفی کنه لحظات مونو پر میکنه بیا <تصفيق> بیا بیا شیری نمونه چه اشکالی داره؟ حتی قل بیکار نیستیم من نمیدونم، تو توی اتوبوس لحظه شیرین هم دیدی؟ ای بابا، بر... چیز دیگه اگه میم داری من بگم بیارم آجیل هفت مزده، بادو هندی بیشتر باشه عوض میخوام قربان. جانم. لطف میکنید آجیل هفت مزده بیارید آقا هفت مزده میخوام <تصفيق> را به <مزده> پنج <ده>، تاش <ده، ده>. مزدش هست یکیش من که پس‌مزدم و جمالو آقا قرارداد دو میاد آقا خورخمه میخوام چی؟ بخو تو گلو کیچاده توخف پای نمیری بای آقا یه رو تمام کنم مشغول تنظیم تلویزیون بود در درست تلویزیونش من که سیاه و سفید و در این خان تمام بسته های تخم را از سیری برداشته باشد هم همون تخمه همون مطمئن مسود آروم میکنه. ها تموم شد برای بادون هینگی هم برای اون بیارم برای بادون مهمون خود من مهمونه این تنه حفیر با, ها با! با! با! آسف هم کنها کنم با! با! با! دادا بچه! چیزی می سخواد امان؟ سوه تفاوته کامبک کنیده ما ببینید تیهی چشه چشه این جدا فرهاد سعی میکنن تلویزیون رو درست کنن. تلویزیون واجودی من شمالو غلط. مال الان درست بشه. مسعود تلویزیون رو بلند میکنه و می درس. اون دیگه <توسیقا> قراره دیگه علامت یه خط سفید بونه صفحه ظاهر میشه. شما فعلا زیاد این میشه. علامت تختنه. سر کوکره. آه... مسعود ویدئو رو میندازه های آقا جمال. اینا وابسته میدادن آنات. کانال چرخونه تلویزیون کنده میشه. آقا ما دست میزنه به آه. تلویزیون دست میزنه که یه قسمت دیگه از جاش در میاد. درست. ویدئو رو به آقا جمال که در حال رانندگیه میدم. بله خوبم. من یه جایی نا نقشه اینو دارم. نه؟ شاید بعضی به ما دستم اینو به یه دست مادمه که اینو به یه دا از ما گیرم اخبا با شیره اینو با اینو با که اونو بده ما با چی اینو چیشو نباشید اشکاله بود نسی فرمه ما شیستاتا تو سفر قبلی اون یومده به آخر فیلم نسیده حالا به حد که برگرده افر یه ساعتی جول بکشه بعدش اشکار باشه نسید هنوز مشغول تعمیر تلویزیون هم بر پیره مرد مسافر خوابش برده نه انگاره همه تو اتوبوس خوابشون برده دو مسعود به کنار آقا جمال و برای خودشون چای یادت نارم. بهروز به کنار لطفی بزن بزن از فیلم‌ها اکشنت بالاتر. چش. بهروز میاد که چه فیلمه. والله شب بین حالش چقدر خوبه. تو گفتی حالش. من افتون سه خواب جونت تو. که گفتی قم نرسیدیم کارش تمومه مگه نگفتین؟ خب الان شیراز هم روزی رفت می‌کنه. من اصفهانم گذاشتم شیراز هم به رفت کو. تو سفر میده بزنم میخواد یه باد میکنه میپره بیرون منم یه آفتابه تو دستش اون کسی یه چکو میخوره و آ آفتابه میریزه رو سر مسافرا آقا رو بند میگن که تو ما به یک جای خوشاب عبا و با سفار سیدیم دوستانی که میخواند یا سیگار بکشن یا اینجا تیف یه درو در باشتن دودشو اینجوری دویایی برن بیرون که بقیه آذار نبیدن دیروز یه فکری زهنش ذهنش دیروز ها چه؟ یه تست تست؟ چی؟ استاد دود دو سه تا مرد مافنگی شروع خواب کنن به دود هوا گردن مسود با آفتابه به داخل کلر سیار ماشین آب می ریزه نتاریم اشتا که شهر بپا نکنیم می زنم چه خفزتون یه برد شد شهر باشه که استخابت ببینم سیگار داریم سیگار؟ تیگور، دیگه تو تو که بیا. آقا جون شما مشکل نداری که؟ نه آبدا نه بدا با... مشکل چه برای چی؟ آقا جون چونه؟ یه خوبه؟ خیلی خوبه خیلی خوبی؟ خیلی خوبه؟ نسا آقا جون چونه؟ شما؟ راحت تنفس میکنم من راحت تنفس میکنم بله؟ آره؟ آره گار بونه کنم آقا, جو. آقا جو. جون تو این مشکل رویه؟ قلب؟ Dio ya beni için adırım. Beni için adırım. Oğlum, şöyle, horoz, ha. Şu, uğraşayım. Rahat. Şunu, şişede, ö, babajuş, sonra gelirim. Gelmesin. به و فیلوز با تمام توان به سمت آقا جون دود میفرسته <تصفيق> آقا جون یه دود زمتشو میفرسته و دوتایی از حال میره میگم سخاوتی و معن سخاوتی <تصفيق> ای بله داره وارده یه تونل میشه فرهاد از سندلی شوفر به و مسافرها رو نگاه میکنه که بینی هاشونو گرفتن آقا جان بایدونی کار کار درسته هلی آقا بابا جان زن بچه مردم تو ماشین پا بیدن مقید چما به زن بچه مردم چی کار داری؟ یوسف جانم باید میگم این بویگه هنماله چیه؟ فکر کنم بیرون بیا از بیرون باشه میدونی هر مسیری بوی داره دیگه اینم حتما بوی مسیر تهران بنده. بهش فکر نکن. میگم تهران بندر بوی جوراب میده. ممکن دیگه. مسعود. سلام. برو ببی استاد بابا بادم. آقای راننده. این گیم بو بوکیان به سرویستونه؟ <متصفح> ده خجالت بکشین دیگه بابا. خودو بذارت <متصفح> نکن. نکن. اونو خدای سر کن. استاندارد 202 داره. متوجهید آقا جون؟ حداقل کولر لعنتی رو راه بندازید. بو جند از این ماشین بره بیرون ده خفه شدیم دیگه بابا دیگه نشته برد دفاع یاده کت هست بیزنیم ها هرقدر بای بیستی تو گنده شده رو بردین بسیم اینو بابا بسیم زدیم بسیم بسیم من به ترکی یا گیرایی آلو تو اینجوری میگیرم ده داشت بسیم تو ببندو دهنه تو دیگه طر می مخص تمام اماام هستیم الانواسطتون کولر میزنم یک روی سب بهایی به بیچ حیف کنیم با چه کره یاز یا بندر آ کنیم؟ باشه افسانه بود این دیگه مال چیه واجون این کولر آبی یا پهنی چی بوده بو گندش مرا باش دیورمون کرد. خسته شدیم دیگه معصود ببین اوندا چه قلالات بود بابا بابا وسامو بص نگاه و پیرمرد مسافر دوباره از خوشحالی بال در یوسف جانم یوسف به سمت اتوبوس میاد من مرسی مرسی خواهش میکنم من مرسی رو خیلی آ... <تصفح> خواهش میکنم به اندازه یک دنیا مرسی به اندازه سفرمون مرسی منظورم شکلات مرسیه یوسف آه, آه شکلاتمه می... شکلاتمه می... ما سر صحنه خیلی از این شکلات ها میخوریم پرانسویه اینا باش با این که ممکنه اینجا گیر نیاد زیر سنگ هم باشه برای گیر میارم مرسی حتما حتما خیلی دوحت بشه. باشه <تصفيق> باشه میخواد بره که میخوره به ماشین برگی باش می‌دونه اگه من گوشه میزنی سرت درد نکنه. چرا سر من می‌ترسم کلا به این اشتباه میندازی. سلام راننده. آقا جمال داخل پمپ بنزینو داره نوشابه می می‌خوره که یه مرد به سمتش میاد. من مدیر روابتومی رستوران چشم انتظار هستم. آوای روابتومی با موتور جلو میره و اتوبوسم تو جاده پشت سرشه. سر ببین حسابش رو با دقیقو جاده نگاه می‌کنه. تو رستورانه میای. یکی یه پیرمرد با لباس نظامی سیبیل چخماقی روی دیوار رو خودشم که مسئول رستورانه زیر عکسش ایستاده. نگاه ی خون. خراب. اوه. همه ی گارسون ها و آشپز ها آماده به خدمت میشه از آشپزهای ماهی رو با آره برقی نس میکنه. بالاخره اتوبوس به جلوی رستوران میرسه و میسته و پیرمرد مسافر باز حملخند میزنه. مسافر با اتوبوس زمین پیری مرد مسافر زودتر از همه او به زور میخواد پیاده بشه. با بی ندارم، مدیر رستوران میاد سراغ مشتری. چلو کباب میخوام درجه یک حالا ببینین اکبر آقا پسر نازنینم چی میخوره؟ شما چی میگید آقا؟ من چیزی میل ندارم شما چی خانم؟ خیلی ممنون. شما چی؟ سیر هنیشون ما من که کنوش شما چی؟ آقا؟ بنده هم سیری، هم سیر، آقای استخابت سیر ماملوک سیر، همه سیر رسید، توب به توب پاره کنم نه نه، اشتباه میکنم، آقای استخابت سیر نیستر لطف کنین یه گه... خبا، نیشون سیر، سیر هست و همه هیچ نیازی نیست، شما آخرج نکن بید لطف کنین، برای آقای استخابت کشلوکم ببینید اصلا هیچ قرضایی نبیر چه چه چه چه چه چه چه چه قضا بین روحی سخاوت بخوره او جا رویاد جبار خودم سرمایه گذاری که گفتم نگه خب بیاره بره بابا باشید بیاره چه بره بره میخوام لده کنید یک تا ها به شب منده کویده اصلا بوگندو بردارید بیارید بس مند چلو که آبا مصمومی ادزای شبنونده بوگندو میخواستم اگه دارید بی زحمت یک پرسشو برای ما بیارید واسه چی میخواید آقا؟ برای گربه من تو چیز ماشینه بعد گفتیم که چیز بشه بدیم بخوره برای گربه توان نیازی نیست آشقالگوی زیاده میگن بیاره برای گربه ما اصلا گوش دوست ندارید چلو که آبا شبنونده همچین بوگندوی قشنگ ه همچین... کسی شده برای ما بیارید. عزیز من امروز روز اول افتادین اینجاست. غذای مونده نداریم. نداریم. باشه همون آش گوشت رو می‌ذارم. اشکالی نداره. آقا، آقا. آتناロス، قربان شما آقا جون. نه. دادم تا براتون یک کوفت. وای یوسف، میگم عجب چه قشنگی مصطفی آقا. آ سی داماد و عروس خانم هم روی یه تخت نشستان. میگم می‌دونید چی می‌کسبه؟ یه غذای پر انرژی. مثل ماری گلده با خاویار جانم؟ یوسف چرا اینجوره نگم بکنی ماری گلده با خاویار؟ اسم این قضیه سرمودی؟ ماری گلده؟ ماری گولدو یه غربا هستین جور دومش قلمبا صدا میکنه آره مالی مال ماری گولدو مالی گولدو آره سلام بر سلام می شما سلام خسته نباشید بازم شما اگه سیادی نیستین اگه یوسف سیادی هستین شیخ خوب اگه سیادی میشی خواهش کنم عینکتونه بردارین من ببینم شما بابا خیلی خوشبختم میکنیم خیلی خوش اومدین چی بگم من بفرمایید اگه سیادیش خیلی خیلی قدرت خیلی داره که ولی نشومیده اینجا میشین جستهای ضعیفی در میشه خواهش کنن دیو امضا به من بدین؟ کنم کلی کوشش آل میشه کلی لذت داریم کلی کاری کنم بفرمی این چیه قولم به رشید این امضا کن ازت به رشید به رشید خوش چیز داره خیلی برایتیش میاد الو الو هرکن شد تره <تصفح> اتفاقات دنبخوام حالتون خوبه؟ قربان شما من با همکار بدبختی از سابر رستوران این گوشی تلفن رو گرفتن تماس. آقا فرمایشی داشتین؟ سلام, علیکم. سلام, علیکم. سلام علیکم. باشی. آقا, آقا یوسف تا سفارش, سفارش بده. من بخش اگر امکان یه غذای سبک سفارش بدم. ببینم چطور مسافرمو تو بله بله مسافر بفرقه بیرون غذا بگیرم. عذر می‌خوام من اتوبوس اما... تا شاید مدیر بشناسته. خیلی خوشحال هستم از اینکه با شما آشنا شدم و به این رستوران اومدم سیادی هستم, سیادی هستم. بله. به هوا صیادی هستم از غلاماننده تلویزیون من چه بله. رابطی داره آقا شما چی می‌ذارید بله دیگه ممکنه به شما عمیتون بفرمید میخوام من با حسر اومدیم ماه اصل و در این سفر در این رستوران اومدی و یه قضیه سبوک اگه محبت کنیم بفرمایید غذا هر گونو میخواید انتخاب کنید بله بله رستوران گفتن نوشاگیزاش ما گفتن که غذای دریاییو همیشه چی هست اما میدونید که لازمه گوارشی لازمیه دی من یه قضیه سبوک میخوام سبوک دریایی اگه بخواید ماهی و خاویار هست توی یخچال بریم خدمت بله نه نه کم حجم و کم قابل فرز در واقع باشه میدونید میدونید که ها بله. اونو غذای صبوک داریم بله بله جروشن داشی بر سر کو در دونو باهتون با هوا بخورید <متحن> غذای دوم لبلو تونه است کاسیمی دام خدمتتون آب بریزید دیلی ترید بخورید آقا <تصفح> <تصفح> خوشامید شما آقا جمال اینارو برداریم بخاله می‌بریم آقا ما آقا جمال و فرهاد و مسعود حسابی مشغول خوردن یوسف جانم میگن این ماری گولداست او یه دیزی اینم آقا جامو، مورگامز، نه خیلی آقا آقا و یه تیکشو رو و بهش بر حالا <تصفيق> ستایی که یه دل سیر غذا خوردن خندون میخوان از رستوران خارج بشن که آقای روابط مومی و مدیر رستوران جلشون میگیرن واقعا همه چی بیست هم فضای استانتات هم غذای استانتات و همین دلیل ما به شما قول میدیم که گهیمه بعد آتوبوسمون اینجا استاب کنیم با ما سفره خدمت تو بیرد. شما خیلی بیجا میکنید آقای چی واسی چی؟ چه مسافر آبوردنیه؟ مگه چشونه؟ چی همه بیرون نشستن دارن نشabanون میخورن. آه آه آه, اه نیم دان تو؟ ناخره گن نیومدن. خب نیون همه گه تیبیشه. نمیشه وقتی که شما پول قضا تونو، پول غذای بقیه دادید، اون وقت درست میشه. استاب کن، استاب کن کارنل، ماشیوخیانه ای ما کسی، و بین داداش. همه چی تو استانتارده اما اخلاقت استانتارد نیست الان یه اخلاق استانتاردی نشونتون بدن تقصد کنیم آقا همونه درشون بزاید کنیم ابروت، بجای خود کارکنان رستوران به حالت رزمی حمله بیکنن حمله بسید بسید بسید شب شده و جمال و مسعود و فرهاد زخمی و بانداج بسته شده داخل اوتوبوس هم آقا تمازی یه دقیق دیگه دارد با این مصافرهایی درده درده دیگه دارد سوچه شم مصافرهای محترم اوتوبوس 745 زمینی خسته نباشید تا اینجا ما دو سه دقیقه دیگه به بندر نگه چی رسیم باتون شاید بودید که ما به هزار دوز و چلک به خاطر تک تک شما به خاطر تک تک شما به چه وصیبت ها و با تک, تک تک تونم خب چه میشد؟ مگر چه میشد اگر اون گوشکی می تو تونم می آمده نبیتونم حال به جون امون نگاه به این زبان تونداتیزه این آخ جمال ما نکنینا درش این کنکشکه مرا بیگه راست بیگه ببینید جرک جرک جرک اون رو یقید خوشت خوشدست رو ندیدید چی میزد اونجا بای حالا کاری نداری. به خیال هم فراد آقا نفری سا دست میکنیم تو, تو دست به دست بیاد جلو حسلم ندارم میام جمع کنم میدم اشپر آقا پوش من یه دوباره دوام میشه. و حالا کل اتوبوس به هم ریخته و مسافر هم رفتن و نصف دمارد. سیبیل فرهادم نیست دوارش <تصفح> دیویدتی ناس حالت از یاد ناراحت نکن ما ما باز این اینو که دیگه ما انسان خاص نیسته این توت خلاصم کن جی رس وان چه این کارو تو همه اعضای خانواده سخاوت مشکی پوشیدن رو یه یمپا. به دیگه لطفالی خان از بین ما رفته. برای شما ها مادر بسیار خوب و مهربانی اینکه زنده هست برای من هم یک نانخوره بسیار خوبی بود یه با گول. یه گولدون گل سر میلسیم خدا بیا عادت از این ماجرا هم میکنه و خدا رو شکر یک ارز خور الحمدلله دومین ارز رفت اون یکی دخترش هم که رفت مرخص شد تو این ارز رفت صدی روزاما امینسو میراث خورا خامشون رفتن مرخصی خدا بیامورد ایدهات بیدا سخاوت بعد از ترک ها در سن 87 سالگی با همسر جوانش زندگی خوش و رو با هم شروع کرد سخابت به کنار رودخونه اومده و مشغول ماهیگیریه و همسر جدیدش هم آتیش به راه گرده به همسرش لبخند مزن گرفتی سخابت چی <تصفيق> رو رو نه راحت باشه میری زمان درداره گرفتا Get in! Get in! Get in! Up! Up! Up! Up! Get in! Get in! Get in! Get in! Get in! سفر باعث قلبشو میگیره و همینجا رادیو فیلم به سفر خوش به پایانش میرسه من آرمان غفاریان نویسنده و رادیوی از طرف خودم و صدا بردار عزیز موشهاب پالاشی و سردبیر و تهیه کننده خانم هنانه اسکاف از شما تشکر میکنیم که تا پایان این رادیو فیلم با ما همراه بودید با آرزوی بهترین سفرها برای شما عزیزان از اون سفرهایی که نمیشه تو سفر لبخند و فراموش کرد همه شما به خدای بزرگ میذارم خدا نگاتون